چو به این خورشید رخشان کلاخ چو سیمین سفر گشت رخسار ما چو باریک و خمیده میده شد پشت ماه ز تاریک زلف شوام سیاه به نزدیک خورشید چون شد درست بی آمد پر از آب رخ را بشست خداوند جان و خرد کردیم برسرندیشه بر برمزده سلام از میکنم خدمت شما شمع وندگان عزیز رادیو فرهنگ برمی که میشنوی پنجره های به محتاب هست و من همیتون رزا هدایتی هستم و مثل هر یک شب مثل درست گفتم آقای دکتر جوندی همانند هماننده هر یک شب آقای دکتر فریدون جوندی در خدمتشون هستیم با شاهنامه فردوسی سلام عرض میکنم شبتون بخیر درود بر شما روزگارتون خوش شما همینطور من ولادت امام علی النقی امام حادی علیه السلام رو خدمت شما شنبندگان عزیز تبریک از میکنم امشب حسابی میخواییم صحبت بکنیم مثل شب‌های گذشته و چقدرم خوب هستش که بسیاری از شما دوستان با توجه به مثلا بیش آقای فروزنده از اعتباطات ما گفتند از ساعت هفت و نیم حدودا شما تلفن داشتید و پرسش و سوال داشتید از برنامه پنجره های روی مهدار و آقای دکتر فریدون جونهیدی همه شب اینطور هستش لطف شماست فقط میخواستم خواهش کنم فقط تشکرم نباشه این دوستانی که تماس میگیرند واژه‌ای رو اگر می‌خوان بدانن در موردش بفرستند در مورد شاهنامه بپرسند و به نظر من یک فضای پژوهشی این رو می‌طلبه فقط تشکر نیست لطف شماست ما ممنون شما هستیم اما این اتفاق باید بیفته درست می‌گم می‌کنم بله همینطوره و این تأکیدی که حالا خود فردوسی بزرگ به اندیشیدن و خیرت رو به کار گرفتن چون این من میخواستم میگم خیرت ورزی که باز آقای دکتر جونیدی این رو گفتن باید این خیرت رو به کار گرفتن بسیار نه ایش نداره خیرت ورزی یعنی میش... خیرت رو به کار گرفتن بله بل. میشه گفتن پس خیرت ورزی در برنامه ما هست هست و پجروحش با این نگاه ما در مخصراتون هستیم و خودشال و شما رو نگه تلفن های چهارسد هشتاد و پنج و دو صفر دویست و بیست هشتاد دو صفر و شماره پیامک سی هزار و و هشت سی هزار هر دفعه من اینم میخواستم بگم الان داشتیم میامدیم با آقای دکتر جنهیدی بالا این پله های ساختمون رو شد آقای دکتر گیا هم ماه رو دیدن از من پرسیدن که ماه چیلی گفتم نیتونم پونستخونه و دیدم هم. خلاصه از اونجا داستان این چیزی که ما هستیم در محصر آج اونجا در پس دادن و یاد گرفتن رو از همونجا با این دهشه‌ای زدی و زیبایی ما دیدیم و آقای دکتر هم خدا رو شد از اونجا فکر کنم جناب آقای حسینی خوبی رو بگم نشد خدا رو شد <تصفح> دارم تعریف میکنم جلو جلو باینده <تصفح> دستم بدمه بله اردوازه بله. باشم و دیگه زیاد صحبت میکنم این معنی اینم که هر بار آقای دکتر با یک شعر شروع می‌کنن درباره اندیشه و فلسفی و خرد رو به کار گرفتن. برای من جالبه با آقای دکترم این مطلب رو ارشد کردم اونطور امشب با توجه به اینکه ماه کامل هستش آقای دکتر درباره خورشید و ماه صحبت کردن این دو دهشعی زد خب من حرف دیگه‌ای ندارم غیر از اینکه عرض میکنم خدمت شما ما در هفته گذشته داستان رفتن که خسرو نزد کاووس شاه رو شنیدیم امشب در آغاز پادشاهی که خسرو آقای دکتر فریدون جنیدی از شاهنامه فردوسی برای ما نیگویم و عرض میکنم جلد دوم صفحه دیویست و شانزده فردوسی بیلایش آقای دکتر فریدون جنیدی یعنی آغاز پادشاهی که خسرو موسیقی میشنویم در خدمت چقدر هفت اما خوب بود کو بون خم خیلی چو تاج بزرگی به سر برنهاد از او شاد شد تاج و او نیز شاد از عبر بحاران به وارید نم زروی زمین زنگ بزدود و قم جهان شد پر از خوبی و ایمنی زبت بسته شد دست احریمنی اندیشه بود باستانی که هنگام که پادشاهان اندیشه مردم باشند و نشبه مردم بوزند خداوند هم مهربانی خودشو از کشور و از اون پادشاه و از اون مردم دلیق نمیدارد و هنگامی که خود پادشاهان ها در اندیشه مهوزی به مردم نباشند بنابراین خوشتاری و تنگی و اندیشه های احریمنی پیش می دارد هم داشتید به پایان جمع بله. جاندار بین شست و کهی دو شاه سرفراز و دو نیت پی از افراز و آمد مخوست دو رو خراب دو خون دو دیده بشست یعنی کابوس کار که گفتن که او با سیاه چه کرد از ایران سراسر برابر کرد و سا که بیجان شدن زن و کودک خرد پیچان شدن تو ایده دید چه باید هست ز و از دانش و زور دست به فرر کیانهی و نیکختری ز شاهان به هر گونهای برتری کنون از تو سوگند خواهم یکی نباید که پیچیزه چیز دارندکی. که پرکین کنی دل از افراثیا دم آتشن در نیاری به آب از این که. این آتش خشم و کینی که بین ایران و توران هست این رو با آب در حقیقت خزمیان نبری خاموش نکنیم حالاته می دونیم که در اندیشه ایرانی و در فرهنگ ایرانی که این لخشم او... به نام دیف ایش شده و درست بوده و در حقیق این هنگی که کابوس که که خسرو میده. و در تمام و در تمام روزگار که خسرم همش ما جنگ داشتیم با افراسی ها. پس از تقریبا دو هزار سال میبینیم یه زن ایرانی گردیه به برادرش بحرام و پروکشت دقیقت حالا هفتندگان نظامان نساسانی او رو برامتوبین خطاب کردن میبینیم گردیه به برادرش پهلوانش پند میده که نگر تا سیاوشت چه بردید جز تابش آفتاب یعنی کشتنش رو سنگ انداختن آفتاب اون رو خوش کرد همون نیز پور سیاوشت چه کرد از ایران و توران برابر کرد که خطور این خسیم نقدیه که به کارهایی که خسرو شده در شامنامه است. هست ولی خود تمام دوران که خسرو هم منظمان جنگ بود سر مایه اونها کیم بود اینجا همین سخنان داره میره به فیچی مادر به اگربی نگ ربی نه پیچی گفت کسی نشنبی به گنج و فضونی نهیری فریب همان گل راز آیدت گر نشیب یعنی اگر با فروت فریب ندن من فریب خوندم اشتباه خوندم فریب باید بخونم فریب در پهلوی و نشیب در پهلوی در فارسی از خلوصان فریب میگه و نشیب میگه بگنج و فضونی نگیری فریب همون گر راز آیدت کر نشیب اینجا کر یعنی یا نگاه میانجی نخواهی جز از تیخ و گرز منش برز داری به بالای برز اینطور که اندام تو بلند هست و پهلوان هستی منش هم بلند باشه و مرتبا فقط میانجی بین تو و تورانیان و افراسی ها باید تیخ و گرز باشه. یعنی جنگ باشه شبش نیده شهریار جوان سوی آتش آورد روی و روان به دادار دارنده سوگند خورد به روز سفید و شب لاجورد که هرگز نه پیچم سوی مهر اوی نه بینم به خوابندران چهر اوی تو دانی که سالارتون سفاه نه پرهیز دارد نه ترس از گناه به ویران و آباد نفرین اوست به لیوی گناهان پر از کین اوست به ویداد خون سیاوش بریخت به مرز باران آتش ببیخت به کین پدر بنده را دستگیر گیر ببخش بر جان کابوس پیر از خداوند ها که من هم به کینش را گوشت و بر جان کابوس پیر هم تو ببخش چیزی که در نظر خداوند شایسته نیست کین اوزان جایگه شد سوی تخت باز برای پهدوانان گردن فراز چون این گفت که نام داران من جهانگیر و خنجرگزاران من به پیمودم این بوم ایران برست از این مرز ساخان و آزرگوشه است ندیدم کسی را که دل شاد بود توانگر بود از بومش آباد بود همه خستگانند از افروسیان همه دل پر از خون و دیده پرا نخستین جگر خسته وی منم پر از درد او جان و تنم کنونگره همه ویژه یار منید همه ویژه یار منید به دل تر سر بسر منید به که پدر بحث خواهم میان به این بعد از ایرانیان چه گویید ویدو این را چه فاسخ دهید همه یک سره رای فرخ نهید بزرگان به فاسخ بیا راستن به درد دل از جای که این نام دار جهان شاد باش همیشه زرنج و کم آزاد باش تن و جان ما سر, سر. پیش توست قم و شهادمانی و بیش توست روخ شاه شد چون گل که دولت جوان بود و خسره و جوان به تراوان بکرد آفلین که آباد بادا به گردان زمین هم شاید داشتید این من اشتابه متوجه شدم هم سوالی که علام کردم زمانه که خسرو باز جنگ باز گوش نکردم باز این چین بود چون که در اندشه ایران و باستان پنج دیف من یک بار گفتم پنج دیف شمورده شده در گفته اه... نیازو، نیاز و آز و رشک و خشم و کین. اینا رو دیف شمورده گفته ها دیفش شمرده و این چون کسی نیازمند باشه و بر زمان او بگذره مدتی نیازش تبدیل به آز میشه و بر آز او تبدیل به رشک میشه یعنی حسابت بر رشش بگذره تبدیل به کین میشه و بر کین بگذاره تبدیل به خش میشه و جنگ در گفترهای پهلوی اومده یه خش دارنده یه خونینه تمام خون زیهای جهان تمام جنگ های جهان و پایه نیازه نیاز, از نیاز آغاز میشه و در اندیشه ایرانه این پنجتا دیو شمرده میشه با اون که که را همباره مرزیتهایش قرار گرفته اما تمام دوران او جنگ بود من شعر گردی ها خوندم پرشم که از ایران و توران برا ورگرد من گمان دارم که انسان دانا و شایسته نباید به مرحله کین برسه باید گذشت داشته باشه. اگر گذشت داشته به مرحله کین نرسیم میتونیم کارها خودمون رو و جهان رو سر و سامان بدیم اما به مرحله کین برسیم دیگه کین چشم نداره درخش خومین داره در هر صورت ادامه میدیم دیگه دفن رو نهادن تبیره برای آمد درگاه شاه رده برک کشیدن بعد بارگاه تبیره رو چند بار من گفتم تبل ریزه و این واقعا به قدری انگیزاننده است که خدا میدونه من در بین تاجیکان در تاجیکستان در بخارا دیدم مثلا 150 نفر دارم دفت میزنن و ریز میگیرن انسان تو ابرال اون پرواز بکنه اصلا تو زمین نیست این تبله ریز به قدری انگیزاننده است که خدا میتونه و برای همین بود که در ایران برای لفتن به جنگ این همین تبیره میزدن و تبله میزدند. میزدن در حالی که وقتی که رسید قدرت به غربیان و یونانیان اونها آلاتی درست کردن برای ترسندن دشمن نه تحریک استفایان خودشون این آلات از جمله این آلات یکی کب کبه بود یکی دفتبه که اونوز با کب کبه بود دفتبه حرکت کرد این دو تا در ساز،, ساز،, ساز جنگی یونانیان بوده و به آقای این سمگین بود اولا کسانی که میزادن گوش خودشون با غیر همواره گرفت بودن که دیگه چیزی رو نشنون این،, این نوازندگان که نمیتونی بگیر زنندگان کوبندگان حوشتاشون همیشه همواره پر غیر بود ما در وقتی که این نوع اونه ساز جنگی به ایران رسید بعد از اسلام و زمان محمود توی کتابها در تاریخ اردیسی نمیده که دب دبا و کب کبه سپاهیان دشمن که در دو فرسنگی بودن از ترس خودش رو به دربه رودخونه افکان دام این فرق حرکت جنگی یونانیان بود و رومیان بود با حرکت جنگی ایران تبیره من امیدوارم که همه مردم ایران این خوشبختی داشته باشند به دخش روزی به تاجیکستان سفر کردن به بخارا و سمرقند برم نه بابا تو ایران <تص> هم داری من دیدم این اتفاقی که 150 تو ما دیدم حالا 150ش رو نمیدونم اما خیلی زیاد وقتی دف می‌زنن یک شور و یک خیره در خود انسان پدید میاد هر در دشمن ایجاد نمیکنه نه نه به خود آدم استند به خودش می‌خکنه تو سفر خودی است من به صورت ریسو اینجا هستی حالا چه خوب شد شما گفتید سلام خدمت شما کردن آقای دکتر جنیدی ساز موسیقی در دوران که فقط تبل بوده یا سازهای دیگری هم وجود داشته با تشکر جهانیان از شیراز در به شیراز من در کتاب زمینش شناخت موسیقی ایرانی تعداد زیادی از سازها رو معرفی کردم امیدان اون کتاب رو بخونید و در اونجا و میبینیم که نخستین ارکستر جهان یعنی گروه هم نوازان جهان که در جباش میش پیدا شده عبارت از یک چنگ و یک کسی که ساز کوبهی میزنه دو تا،, دو تا طب رو زمین داره که حتما اندازهشون با هم فهم کنه که صداها ها با باشه و یک کسی هست که دو شاخ بزرکوی داره که این هم اندازه ها ک... نشون میده که فرق میکنه برای که دو سول که میزنم چون تو نایی که بدمید نای اولش دو هست اندکی به نیرو بدمید سول میشه اگر بزنید اندکی به نیرو تر بدمید با دو میرسه دوی اختاب بالا و این دو تا نایی که کوچیک و بزرگ هست این نشون میده که میتونه چهار تا پرده رو از هفت پرده موسیقی هم باشه با چنگ و روبرون هم یکی سینشسته که دست رو گوش یعنی من آواز بخونم این نقش اولا نخستین گروه هم نواز جهانه چون بعد از چند دو سال سه سال, سال, سال دیگه در مصر گروه پیدا شده که اونا دارن درس میزنن هم نوازشون با دسته. و در عربستان با سنگ به هم دیگه میزنن اما این ساز داره یعنی این که حرکت دوم اینکه نشون میدی که اون کسی که داره میخونه همراه با زرب یعنی داره شعر آهنگین میخونه یعنی پنج هزار سال پیش ما دارای شعر آهنگین بودیم با دستگاه هایی با, با همراه با دستگاه آهنگین بودیم باید شعر آهنگین بودیم گروهی گمان میکنن که ایران شعر نداشته باید گوتو خیده ها هم میزن که های ما میخونه. نه چه چیزی میخونه این نگاره به خوبی نشون می‌ده که نه شعر داشتیم آهنگین بوده وزن داشته برای داره با تمرین بخونه در هر صورت امیدوارم که این آرزو باشه دیگه ایرانیان برن سمرقند و بخارا رو ببینن برن بدخشان رو ببینن برن خجند رو ببینن شومان رو ببینن یعنی دوشنبه پایتخت تاشان رو هم خوونان رو ببینن هم زبانان رو ببینن و ضمن اون آقای دفی رو که من میگم بهش من تا ببینن که چطور جانشون پرواز میکنه ما میگن هم می هم هم همه بله اون می تو من خودم برخد میکردم اینو میگفتم بله. و یه اتفاق دیگه من دیشب شدیدم که توی اخبار شدیدم چهره یک زنی بازسازی شده که در 5 سال پیش چشم مصنوعی داشت بله یعنی چشمه براش گذاشت حرکت میکنه بلو بلو. یعنی دو تا میله که این میله حرر حرکت میکنه ما بیخبر بی هستیم از دانش و خردنیان اقوام ما ما بعد هست از تا برسیم به بتوزیم راه ببینیم ببینیم که 5000 سال پیش 4850 سال پیش جراحی مغز چشمه مصنوعی چشم مصنوعی که حرکت بکنه با غیر بوده که آب نشه و زنگ اگر فرزدی می بود زنگ میزد. با گونه قیر و داروهایی که او زد رو آب نشه و حرکت بکنه بله هست نیاکان ما بزرگ بودن تاری شد می بسیدن یاد شما آفتد خب دستان باشید که چنین به حضات بیاده شما آفتد طبیل بر آمده در گاه شاه رده برکشیدن بر بارگاه ببستن بر پیل رویین خن بر اومد خروی گفتوم گفتم رو من گفتم که گونه گنه از بوده که به شکل دموگاه بوده یعنی درست به گونه ساکسیفون امروزی بلکه شیپور رو اگر بخوام به رو دست بگیرن دست اندکی مانده میشه و پول موضوع خسته میشه اما اگر به تن خودش چسپیده باشه دست این رو بگیرند دیگه دست آزار نبیه این گفتم در جنگ بوده نهاده هم کوه کوهی پیل تخت به بار آمدن خسروانی درخت بیا آمد نشست از بر پیل شاه نهاده به سربر ز هم کلاه نخستین فریبرز بود پیش رو که بگذشت پیش جهاندار نو فری بوز یعنی کسانی که بر فراز این پوستان البرز میانی می و این رمزش در شان هم اینه یعنی باشندگان البرز میانین اینه جایی که مثلا فتخونه که شمران هست و روسته های شمال تهران هست و فرد از نسو میرسه به آمول و بابول و اینها این, این باشندگان این کو نامشون تطمئنگان فرید با فیروز کو تو فیروز فروت نخستین فریبور بود پیش راو که بگذشت پیشی جهاندار نو یکی بر برنشست سمند به فتاک بر حلقه کرده بر برو آفرین کرد شاه جهان که بیشی تراباد و فر نهان و هر کار وقت تو پیروز باد به باز آمدن باش پیروز و شاد یعنی شکست نخوریم برمی کردیم که میرید با شادی و پیروزی برگردید پس شاه گودرد کشبات بود یعنی این شاه که میگه فری میگه برای که این فری برز امویی که خسروه و پسر کابوس شاه بود و اگر بیاد داشتشید در جلس پیش که خراسانیان ترفتار او بودن میخواستن او پادشاه بشه. پس شاه گودرد کشبات بود یعنی کردستان، آذربایجان و درستان که با جوشن و گرز پولات بود به گودرز بر شاه کردآفرین چه بر گیب و بر لشکرش همچنین گیب انحسارا سپهسالار لورستان بود دمان از پسش زنگه شاوران بشد با دلیران و گنداوران درفشی پس پشت پیکر کرهمای سپاهوی تو کوخ روانده دیجای آرائش, رو... آرائش سپاه رو در نظر بگیرید کسانی که در منظر اصلا کاغذ در... در دستشون هست میتونیم بکشن اول کوستان انبورزو بکشن بعد آذربایجان و کردستان و لورستان. چون گیرد دیگه مثلا از آن کوستان از در زنگی شاوران یعنی خوزستان میبینید که گرد و گرد ایران سپاهیان آماده شدن برای جنگ پس این زنگه شال کرد آفرین برام برز و بالا بود. تیغ و نگین در پشت سفه بد فرامرز بود که با فرز با برز و با عرض فرامرز فرامرز فرامرز درستنه پس از خودستان میرسه به 30 سال تا اینجای نیم دایره بیشتر از نیم دایره چه در بین ببخشید تا درجه اگر دایره رو بخواییم بشموریم زده شده از بخصوصاً اروپا، آفریقا، آسیا، کردستان آسیا، آمریکا، و سیستان اینجا یک مقدار آمریکا، داره که آسیا، از آسیا، آمریکا، تا آمریکا، به بخش پستیم. به توس با کاویانی درخش خب حالا خراسان، یعنی دایره کامل شد پاشندگانه هل برز سه بار میگن ببخشی بلیم که خوب تجسس کنند بکشند با خصوص دانشان جوانان اینو بکشند رو کاغذ پاشندگانه کوه هل برز آزار بای کردستان لرستان گزستان سیستان خراسان، دایره کامل شد به شو توس با کار بیانی درش به پایان درون کبه رقیم به دو گفت مگذر در پیمان من نگه دار آین و فرمان من زیبا این آین که خود میده ما گفتیم که همش کین بود ولی ببینید این کین آیا متوجه مردم بی هم میشه نه از تویی نه اما از توی این ایرانیان همواره چنین بوده همه چهار آتش میدن همه چیز را از این همه خون میرهدند تمام ما هم درختارو ببینید که پیمان که خسرو با توز که سبستال آجان بود چی بوده نیا باید کسی را براه چون این است آیین تخت و کلا کشاورز گر مردم پیشور گر یعنی یا کسی کوب برز و نبندد کمر نم که بر وی وزد باد سرد ما کوشی هیچ جز با کسی هم نبود کوشیدن در زبان پروینی جنگ کردن که بود در وروایش توخششین بوده که توخششین همین به منی کوشش امروزه که از این واجه در زبان تهران تقس باقی مونده پسر بچه که خیلی کوشش میکنن از پرده میرن بالا و از و یعنی مرتبا در حال حرکت و بنابراین بله بله. بله بله بله کوشیدن یعنی نبرد کردن جنگیدن و تقسیدن توشش... یعنی, یعنی حرکت کردن اون چیزی که امروز ما بگیم کوشیدن دوباره میخونم نیا زورد باید کسی را براخت چونه این از تخت و کلاه کشاورزان کرد مردم پیش بر کسی کو برزمت نماند در کمر نباید که بر وی بر وی وزر سر من هیچ جز با کسی هم نبرد نباید نمودن به بیرنج رنج که بر کس نم‌آمد سروی صفا صفا یعنی همون کشاورزان و پیشوران و مردم عادی که از اونا رنجی متوجه ما نیست ما نباید به اون رنج کرد همطور که گفتم اکس کاری که همسایگان ما میکردم چون این گفت پس با شهریار که از رای باد سرد من که با جز با کسی هم نبرد نباید نمودن به بیرنج رنج که بر کس سر آمد سرای سپنجنی همون کشاورزان و پیشوران و مردم آدی که از اونا رنجی متوجه ما نیست ما نباید به اونا رنج آرز کن. همطور که گفتم عکس کاری که حسر گ ما میکرد دارد. گفت پس توس با شهریار که از راه تو نکذد روزگار به راهگیر هم کم تو فرمان دهی کمینی که مرا به راهی روم کمت و فرمان دهی از فرمان تو جز بهی. یه پنجره های رو به مختب رو میشنوید از شبکه فرخنگ و آقای رو شرف ایدون برای ما از داستات های شامنامی میخوند و تلفن های برنامه ما 220 400 85 222 400 85 222 5828 20 220 پانسد و دو و شماره پیامک سی هزار پانسد و هشت سی هزار پانسد و هشت که من گفتم که آرام بله همون بله همون راه من اگر اجازه بفرمانید آیدو تو جانیدی پیامک زیاد داریم بخونم اینها رو پاسخ بدید که شرمنده عزیزان نشید خواهش کن درود بر استاد بزرگ فریدون جنهدی و مجری دوست داشتنی آقای همینجزای دیدتی داد خیلی دادست دارید استاد نخسته فرمیند پایان سروده های دقیقی کجاست دو دیگر آیا ممکن است در زمان های مختلف سروده های از شاهنامه هست شده باشد با سپاس فراوان شاد باشید شاد زیوید آقای جمع جمعوری شکتی جمعوری رزا شکتی بله بله, بله بله از یادان اونی ها به نشابور هستن ایشون سه بله. خوب بله مهرشون شامل خانمون هست بر با کوششی که من در شانمه کردم خوشبختانه دیدیم که اون افزایندگان میخواستن حجم شانامل زیاد کنند برای خواسته اون سخن یابهی که محمود 60,000 دینار میخواسته به تردسته آن پول و فلان و به خاطر ما دینار نشده خوشبختانه مگه در چند جا مثلا یک بیت کم شده باشه افتاده باشه که دیگه من پیدا نکردم خوشبختانه یه شانومه از اصفهان به دست مدرسی که نام شانومی اصفهان گذاشتم که اون شانومه چون خیلی که بود توانست که در بعضی از جاها که همه نمونه های شانومه های در دست خالق مرف و شام های, شانوم های موسکو با ایراد مواجه بودن اون توانست که پستست ب ما. کم همطور ترک کردن نشده مگر در چند جا خیلی مخصصل و پایان کار دقیه هم پایان کار در حقت جنگ هایی که میان و هرجاس و پیون رخ و به پیروزی اسفندیار منجر شد از داستان هفت خان رستن ببخشید از داستان رستن و اسفندیار مجدد کفتان فردوسی رو با درود آیا تورانیان و ترکا از یک تبارن از لحاظ نژادی و زبانی توضیح دهید احالی کشتر ترکیه دارای چه نژادیند؟ هست و فهندش این اراده دارم شاد باشید تورانیان نژاد آریایی داشتن و یعنی طور فرزند فریدون بود برادران بود برادران بودن در رعبستا در همه جا اومده تو یعنی پسر و بعد براصل یه فاجعهی بزرگ که جهانی که روختاد و سرما که من پیشتر زیمان گوشتم شما ایران تواق شد طوران ما از میان رفت بعد از طورانیان گروه پیدا شدن تحت عنوان هیونان که اینا هم آیایی بودن بعد از هیونان هپتالیان یا ایتالیان یا افتالیت ها پردیدار شدند که اونها هم آریایی بودن خب در اون زمان که درباره اینا تحقیق می در مسکو دانشمندان روسی پی بردن به در هویت آریایی اینا و اینا سطح خیلی خوبی بودند سطح قومی بودند بین ایران و اون زردگوستانی که تحت عنوان ترک از شمال سیبری سرازی شد رو به طرف جنوب آسیا و به طرف اروپا متاسفانه کس را بیاری همون ها این آف... آفتاریت ها یعنی هفتاریان را از میان برد و این صد طبیعی درست فرهنگی شکست و راهباد شد برای زردوستان ترک به هیچ روی آزربایجان گرامی ما اینا ترک نیستن و همچین ترکیه تا نیمی از بخش شرفی بیشتر از نیم بخش شرفی اینا که کرد هستن کردار کرمانچ هستن و پیرانی هستن که تحت ستم هستن بقیه هم چهره ها هیچ نمیده ما این برحت کسانی که بر کشور عثمانی حکومت میکردن میبینیم اکثرشون اینا به, شعر، به فارسی شعر گفتن. می اینا به اگر ترک بودن به ترکی سوات اینا به فارسی شیعه گفتن شیعه که خیلی خیلی زیادی به فارسی بوده و همونه آزبایی جان بزرگ هستن نه نه حالا آس... آس... آسیای سخیر آسیای آس... کچک بله. که تحت عنوان کشور عثمانی عورق... بله. نامبردار شد و شما باید بدونی که نوخستین بحثگاه چاپ فارسی در جهان در استانبول می... قد درست شد یعنی آمادگی کار پیدا کرد و نخستین روزنامه فارسی زبان در استانبول بوده و بعد در مصر و همچنین در هندوستان بعدن پیشتر در ایران روزنامه به فارسی باشه این کسانی که اینطور به فارسی اسم میوزدن به فارسی شعر میگفتن به فارسی میزیستن بعدن وقتی کسی مصطفی کمال آتاتور کنند و بانیان رو دکرون کرد و ما ترک هستیم و تبلیغ کرد و در حقیقت باشندگان اون مذبه خیلی از کردان شرقی بقیه تصور کردن که ترک هستن ترک کسی که با رنگش زرد باشه و شما فر رفته داشت پیش پیشونی برامده باشه قد کتاه داشته باشه و پاهای کوتاه و از زانو گشاده یعنی مثل دو تا کمانک یا پرانتز پاهاش باشه این ویژگی که کرد داره مثلا در مغولان هست این چهره های بسیار زیبا که در آزربایجان میبینیم که آریایی هست چنین گواهی نمیدن همچنین چهره های بسیار زیبایی که در کشوری نام ترکیه هست که این در حقیقت بازماندگان اون عثمانیان هستند، تاکه نخستین دستگاه چاپ فارسی جهان رو داشتن نه این ها هم هیچ اصطباب دارد با تشکر از برنامه خوبست اصطاد جانهدی در برنامه های قبل در مورد خواهرخاندگی کشورها توضیح دادند خواهش میکنم یک بار دیگه توضیح دهند خانم فرهنگ ر. سرزمین در زبانهای آریایی همواره مهمست کده تو امروز هم در زبانهای آریایی سرزمین و شهر و حتی خانه یعنی جاگاه همش مهمسته مثلا د فرانسه خانه میزون گفته میشه با پیشمند لمیزون یعنی پیشوند تمیز. خب دانشگاه شر کشور سرزمین همه جامعه هندسته اون وقت در شاهنامه این به صورت دختر یا مادر تجلی میکنه جماعات مزکر هستن این به صورت پدر یا به صورت مثلا پسر متجلی میشه در شاهنامه و در اروپا معلوم همه این مسیت هست که زبانهایی که مثل فرانسه و آلمانی که کاملا در همه سیفاه ها معنص مزکر دارن اینطور میگن در انگلیسی هم که نیست در زمین سوم شخص مرت هیوشی هست. اما در زبان انگلیسی همواره هم دانشگاه و شهر معس خونده میشه کشتی مع خونده میشه و دو شهر اگر به هم دیگه پیوسته باشن اینا میگناه خواهر کشور ما نداریم خواهر شهر داریم. و دو دانشگاه اگر به هم پیوسته بشن میشن خواهر دو دانشگاه خواهر میشن و این دیگه در حقیقتی میراس خوب زیباییست که از دیاکان ما به ما رسیده که جماعت زکرش خونده بشن و شهرها جنگرها مواهی کشورها خانه ها اینا همه محمد باشن خب سفا پ... سوال هست من میخوام قصه بس... از دست کسی نیست. داست داست. تاریخه تاریخ. داشتن داشتن. بوده در فلسفه یعنی اون چیزی که پداد یعنی به واقع اتفاق افتاده. تاتیستان. چه اومد سرکشان توس نرم، پس از اینکه سپاه از چهار طریق ایران همه حاضر شدن و توس سپاه رو گرفت از پیشش آن اومد پیش سرکشان. پر. چه اومد پریسکشان توس نرم، سخن گفته زن راه بی آب کرد. من در این بار صحبت کردم چند بار صحبت کردم که این بیابانی که بین آمودریا یعنی رود جهون و دریا و دریا مازندران یا ایرکانیا یا آبسکون یا گرگان یا گیلان یا کاسپیان یا خزر به همه این نام ها نامیده شده این قسمت بی بینش است که بیابان بسیار گرمه و تورانیان تا فصل خرداد یعنی تا پنزدهم تیر هم میتونستن که از اینجا حرکت کنن خودشون خیلی سری برسونن به ایران اما ایرانیان صلاحشون نبود که از این ین از این بیابون برن برایکه از شهرهای ایرانی اگر میرفتند شهر، مردم شهرها از سپاه ایران هم پذیرایی میکردن و به شادمانی به خودرمین میرفتند سپاه ایران همواره در شهرها مهمان بود حتی در سالهای اخیر مثلا بر این میبینید در زمان صفاده اینام استفایان به هر شهری مثلن هر خانه‌ای به نسبت گنجای ششت و سه چند تم از استفایان رو میبوردن پذیرایی خب بهتر همین بود که از راه بیابان نرم که توس همینو میگه چه آمد برای سختشان توس نرم سخون گفتاشان راه بیاب و گرم چه روزی به سختی فراز و آب و آسایش آید نیاز همون به که سوی کلات و جرم برانیم و بردل نرانیم کم. چپ و راست آباد و آب روان بی چه کوبیم و رنج روان بدین گفته گشتند هم داستان بر این بر نزد نیز کس داستان داستان زدن یعنی زبان المثل و در ایران, در ایران خیلی این موضوع بوده که گفتارا خودشون رو با داستان یعنی در مسئله آغاز بیکرد این نشون بده که پیشینهان ما در این باره چی میگفتن و من اخیران کتاب داستانهای خود ما چند کتاب در این زمینه چاب کردیم داستانهای لوریت، داستانهای و زبانزتهای شوشتر داستانهای و زبانزتهای دلیجان چند کتاب هم در دست داریم ولی اخیران از بلوچستان گرامی هم یک... یک کتابی به دست من رسید که از این داستانها خیلی فراوان اومده اما با من تا که من پژایش کردم آزربایی بیشتر از همه هنوز هم مثل بکار برد در گفتارشون بسیار ها ها اینا های این همه ولی اونا که کمی ازشون زمان گذشته اونا اول بخواهم بگم که یک مثل میکشند که اینطوری. مرتبا در آزربایجان این کار یعنی اینکه که نیاکان ما بزرگان ما پیشینیان ما در این مورد چه این داستان کسی نظر یعنی هندیشی تو درست بوده پس آگاهی آمد به نظر فرود که شد روی خورشید تابان که بود، یعنی از گرب سفا برفتن پویان تخار و فرود جوان را سر بخت برگشته بود از افراد چون کشگردت سفر نتون دیب راوید از بون نمیر این یه اندشه ای که یعنی وقت و اقبال رو تغییر میکنیم بله. گزیدند تیغ یکی کوه که دیدار بود یک سر ایران گروه یعنی تمام سپاه ایران رو از اون بالا میدیدند تو ایرانیان از بر کوه سار بدیدن جای فرود و تخار برای شفت از اشان سپختار توس فرو داشت بر پای بر جای پیلان کوس یعنی پیلان کوس وقتی که بیستن سفان پشترش چنین گفت که از لشکر نامدار سواری بباید باید هوشیار که جوشان شود زین میان گروه بلد عصب تا بستر تیغ کوه ببیند که آن دو دلاور کیان بر بران کوه سربر روحر چی هستند یعنی چرا بالای اون کوه سار در اینجا یک ای بخش عظیمی افسده داره مثلا یکی از این افسده اینه که یکی از کسانی که با فروت میره جمع کنه ریو میبینیم که چندی بعد همین ریو در توران کشته میشه یعنی مشو میده که ریونیز نیست اینجا کشته شود باشه اگر در توران کشته میشه به خاطر او بهرام با تجرف میجنگه و اونجا بهرام پسر گودرز جان خودش از دست میده به خاطر تازیانه که به زودی میرسیم یارو اگر ریف در توران خود در جنگ با توران اون کشته میشه نمیتونه با فرود جنگیده باشه متاسفانه تمام کسانی که در شاهنامه دیخات کرد، یعنی کار کردن و ویرایش کردن اینا با همین موضوع توجه نکردن چند کس هست که اینا در این بخش افضاده میان با فرود می که اینها داستانشون درست نداره وقتی که اونجا گفت که یکی سواری بباید که جوشان به طرف بزرگ خوب بره پاسخ اینه چونین گفت پس پهلوان با است که به در را چه آزرگوش هست است پسر توس بوده خروشان به اصفنده ورد پای به کردار آتش در آمده جایه این گفت با شاه جنگی تخار این تخار با فرود گفت که آمد گهه گردش روزگار که این پور توس است نامش در است که از پیل جنگی نگرد آمده است چون بیند بر و بازو مفرد، مفرد خدنگی بباید گشاد از برد یعنی تیر خدنگی رو بر خود تو بگشایی یعنی تیر روی رو کمان بکشید تا آماده زدن باشه بر یه دست چپ چط... ستون میشه دست راست خم میشه یعنی برگوشاده میشه یعنی دست آغوش انسان گوشاده میشه باید چوبیند برو بازو و مخفرت به بباید گوشاد از برد بدان تا به خاک اندر آوید. سرش نگون اندر آوید بباره برشن از بیارد در پیتی پیشینم اینه که هنگامی که زود این رو نود تیر رو بزنی هنگامی بزنی که او برای بازو مقفر تو رو ببینی یعنی تو هم باید برای بازو مقفر او رو ببینی چون تیر اینقدر در اینقدر نمیتونه که پرواز بکنه تا به راه های دور بره و اندازه ای که پهلوان بازو داره و بالاخره حدودی داره, داره. باید جایی بزنی که ببینیش یعنی برو بازو و مخفر نا رو بتونی تشخیص بدی حالا در اینجا اومده که او برو بازو و مخفر و تو رو ببینه یعنی بر گفته یه زیبایی بسیار است در شعر او برو بازو و مخفر و تو رو ببینه اون وقت تو خدنگ بکشای زود اقدام نکن فرود دلاور برنگی عصب یکی تیر وزد یکی تیر زد بر میان که با کوخه زین تنش را بدوخت روانش زپکار ز پیکان او برفروخت بیفتاد و برگشت زو بادپای همیشو دمان و دنان بازجای یعنی بادپای یعنی اصب او شهیکشان به خیلی سرعت باز بازگشت به طرف لشکر ایران